به نام خدای حسی بخش و دهنده بکران نوید هستم، نوید آریان گاه اوقات خیلی از دوستان سوال می کند که مسئول زندگی و در حقیقت رئیس زندگیمان کیست؟ خب جواب خیلی ساده اگر قرار باشه به این سوال بدیم اینه که خودمان خودمان مسئول زندگی من هستیم نه هیچ کسی دیگهی خب سوال اینه که چطور ما در عقد افسار زندگی خود را در دست داریم و براساس اساس انتخاب خود ما زندگیمان را شکل میدیم. و این شکل دادن در زندگی دقیقا براساس انتخاب ماست و ما انتخاب می که زندگی ما به کدام سمت و سویی جریان پیدا بکنه به کلام سمت سوی حرکت بکنه خب پس ما پادشاه زندگی ما یا ما انتخابگر زندگی ما هستیم اگر اتفاق بدی در زندگی ما میفته و اگر اتفاق نخوشاین یا اتفاق خوشاین در زندگی ما میفته آیا مسئول او ما هستیم بله دقیقا ما هستیم یعنی هیچ کسی غیر ما نیست که زندگی ما رو کنترل بکنه و یا مسئولیت زندگی ما را داشته باشه خدای متعال ما را آزاد و فریده و بر اساس در خدای درونی که همون عقل باشه عقل را در اختیار ما قرار داده که ما بر اساس عقل تصمیم بگیریم بر اساس عقل زندگیمان رو انتخاب بکنیم به همین خاطره که مجازات و مکافات در زندگی معنی پیدا میکنه اگر چنین چیزی نبود زندگی در زندگی مجازات و مکافات معنی نداشت پس ما زمانی در زندگی در حقیقت به بالندگی و اوج موفقیت میرسیم که احساس بکنیم که زندگی ما در دست ما هست و مسئولی صفر تا صد زندگی ما خود ما هستیم نه کسی دیگه در هر زمینه‌ای که شما فکرش را بکنید در همون زمینه حرف صادق و کاملا درست هست زمینه اقتصادی زمینه غیر اقتصادی زمینه اجتماعی زمینه خانوادگی همه اینها در حقیقت مسئولیتش به عوده خود ما و بدون خود ما هست و ما هستیم که مسئول زندگی ما هستیم نه غیر ما هیچ کسی مسئول زندگی ما نیست نبوده و نخواهد بس سوال اساسی اینجاست که ما گاهن دست به دعا برمیداریم و دعا میکنیم که خب این مسئله چنین به چینین شکل اتفاق بیفته از خدا و از کائنات و از قدرت برتری هستی میخواییم که یک مسئله خاصه به شکل خاصه که ما دوست داریم اتفاق بیفته خب زمانی که ما به شکل خاص یک مسئله را دوست داریم اتفاق بیفته چه اتفاق قراره رخ بده به این درخواست ما چی پاسخی داده خواهد شد خب بسیار واضح هست اگر درخواست ما مطابق با واقعی باشه مطابق با خواست های درونی باشه و دقیقا دوری باشه که همجهت با این ری باشد باشه دقیقا اتفاق میفته و اتفاق صورت میپذیره و ما قضیه را آنطوری که هست میبینیم یا برعکس نه موضوعی مورد دلخوای ما موضوعی مو مو مو مورد, مورد مد نظر ما آنچنان نیست مثلا ما دعا میکنیم که محمود از فلان مرض مثلا مرض ایتیاد یه ما کنه آیا این درخواست ما همسو با درخواست کلی کائنات و جهان هستی هست یا نه خب اگر طرف مقابل که محمود باشه خواهان بهبود یافتن باشه از دل و در حقیقت مشتاق بهبود پیدا کردن باشه قطعا اتفاق میفته و این دعای ما همسو با خواسته ایشان میشه و یک اینی ریف و زیاد را ایجاد میکنه که این ریف زیاد باعث، در حقیقت همجوشی شده و یه همجوشی باعث تغییرات در موقعیت میشه موقعیت منظور همان فرده که باید بهبود پیدا بکنه همان موضوعی که باید به شکل خاص اتفاق بیفته یه اتفاق خواهد افتد پس ما در هر صورت چه بخوایم چه نخواهیم اگر بخوایم هم ما تصمیم گرفتیم که چگونه زندگی بکنیم اگر نخواهیم و ما مثل بعضی از دوستان اعتقاد به قضا و قدر داشته باشیم که خب چیزی هست که اتفاقی هست که خدا بر ما خواسته و ما خاصه خدا رو زندگی میکنیم اگر چنین تصوری بکنیم هم درست فکر کردیم اگر تصور بکنیم که ما در حقیقت ارباب زندگی ما هستیم پادشاهی زندگی ما هستیم و ما انتخاب بکنیم که چطور باید زندگی بکنیم آن وقت است که آن اتفاق مدی نظر به شکل دلخواهی ما اتفاق خواهد افتاد کاملا صادق است پس زندگی به ما آنچی را خواهد داد که ما از آن انتظار داریم نه کمتر نه زیادتر دقیقاً شبیه به یک رستورانی هست که شما به او تشریف میبرید برای غذا خوردن قرار است غذا بخورید و از منوی این رستوران یک غذای را انتخاب کرده و به صاحب رستوران سفارش غذا را میدید دقیقا به همین سادگی به همین شکل اتفاق میفته پس ما چی انتخاب بکنیم چی انتخاب نکنیم در هر دو صورت ما کار درست رو انجام دادیم یعنی چی کار درست رو انجام دادیم یعنی که ما با انتخاب هم انتخاب نکردن هم انتخاب کردیم که انتخاب نکردن یک نوع گزینه شد برای ما در اینجا پس سرنوشت ما کاملا به دست خود ما هست به هر شکلی که زندگی ای ما به هر جهتی که زندگی ما در حال گذران هست در حال پیشرفت کردن هست ما خود مسئولی او هستیم نه کسی دیگه ای نه دولت نه جهان نه شرایط جنگی نه شرایط صلح نه شرایط هر شرایطی که شما او مسئول بدانید شرایط ها گرچه تأثیر گذار هست ولی تاثر گذاری شرایط ها آنچنان در زندگی ما نیست که در حقیقت سرنوشت ما را عوض بکنه سرنوشت در دست خود ماست یعنی ما باید تصمیم بگیریم که چه کار بکنیم ما باید تصمیم بگیریم که در کجا زندگی بکنیم ما باید تصمیم بگیریم که چطور زندگی بکنیم ما باید تصمیم بگیریم که چی لباسی بپوشیم ما باید تصمیم بگیریم که به چی زبان حرف بزنیم ما باید تصمیم بگیریم که چی نوع در عقد یا به چه شکل صحبت بکنیم همه اینا تصمیم گیرنده ما هستیم زمانی که ما سپا از خواب بلند میشیم تا شب که مجدد به استراحت میپردازیم ما تقریبا بالاتر از ده میلیون بار بر اساس محققین تصمیم میگیریم ما در هر لحظه ای از زندگی ما در حال تصمیم گیری هستیم هر لحظه ای از زندگی ما در حقیقت مهم ارزنده هست چرا که ما در آن لحظه در حال تصمیم گیری برای پیشبرد زندگی ما به شکل دلخواهمان هستیم پس ما ارباب هستیم ارباب زندگی خودمان ارباب زندگی که قرار در او زندگی ما نقش پادشاه را داشته باشیم ما هستیم پس ما تصمیم میگیریم کی کی باشیم چیگونه باشیم و کجا باشیم خیلی مهمه که ما به این مسئله مهم پی ببریم ما خود ما خود خالق زندگی خود هستیم ما خود خالق زندگی خود هستیم امیدوار هستیم که انشالله از این صحبت خیلی کم استفاده های زیاد رو شما ببرین به امید خدا به امید دیدار شما